اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجه خداوند بخشنده بخشاگشگر حمد مخصوص خدایی است که این کتاب آسمانی را بر بنده برگزیده اش نازل کرد و هیچ گونه کجی در آن قرار نداد قاییم لُنذِر بأسًا شدیدًا ملذ هو یبشّر المؤمنین و يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا در حالی که ثابت و مستقیم و نگاهبان کتاب های آسمانی دیگر است تا بدکاران را از عذاب شدید او بترساند و مؤمنانی را که کارهای شایسته انجام می‌دهند بشارت دهند که پاداش نیکویی برای آنهاست همان بهشت برین که جاودانه در آن خواهند باند و ينذر الله ولدا بنیز آنها را که گفتند خداوند فرزندی برای خود انتخاب کرده است انذار کن ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من افواههم إن یقولون الا كذبا نه آنها هرگز به این سخن یقین دارند و نه پدرانشان سخن بزرگی از دهانشان خارج میشود آنها فقط دروغ میگویند فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا گویی میخواهی به خاطر اعمال آنان خود را از غم و اندوه خلاص کنی اگر به این گفتار ایمان نیاورند إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أيهم أَحْسَنُ عملا ما را روی زمین است زینت آن قرار دادیم تا آنها را بیازماییم که کدامینشان بهتر عمل می کنند. و این ما عليها جرزا. ولی این زرق و برق ها پایدار نیست و ما سرانجام قشر روی زمین را خاک بیگیاهی قرار می دهیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف و كانوا کانو من آیاتنا عجبا آیا گمان کردی اصحاب کهف و رقیم از آیات عجیب ما بودند اذ اول فتیت الى الكهف فقالوا ربنا فقالوا ربنا آتینا من لدن که رحمتا و هیئ لنا, لنا من امرنا رشدا زمانی را به خاطر بیاورد که آن جوانان قار پناه بردند و گفتند پروردگارا ما را از سوی خودت رحمتی عطا کن و راه نجاتی برای ما فراهم ساز فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ما پرده خواب را در قار برگوششان زدیم و سالها در خواب فرو رفتند ثُم بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ اَيُّ الْحِزْبَيْنِ احصَالِ مَا لَبِثُوا امدًا سپس آنان را برندیختیم تا بدانیم و این امر آشکار گردد که کدام یک از آن دو گروه مدت خواب خود را بهتر حساب کردند نحن نقص عليك نباهم بالحق این هم فتیت آمنوا ربهم وزدناهم هدا. ما داستان آنان را به حق برای تو بازگو میکنیم. آنها جوانانی بودند که به پروردگارشان ایمان آوردند و ما بر هدایتشان افزودیم و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه اله لقد قلنا ایذن شططا و دلهایشان را محکم ساختیم در آن موقع که قیام کردند و گفتند پروردگار ما پروردگار آسمان ها و زمین است هرگز غیر او معبودی را نمیخوانیم که اگر چنین کنیم سخنی به گذاف گفت این هاولای قوم من دونه لولا یأتون عليهن بسلطان بین فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا این قوم ما هستند که معبودهای جز خدا انتخاب کرده اند چرا دلیل آشکاری بر این کار نمی آورند و چه کسی ظالمتر است از آن کس که بر خدا دروغ ببندد و اید اعتزلتموهم و ما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته و يهيئ, و يهيئ لكم من امركم مرفقا و به آنها گفتیم هنگامی که از آنان و آن که جز خدا میپرستند کنار گیری کردید بقار پناه برید که پروردگارتان سایه رحمتش را بر شما می و در این امر آرامشی برای شما فراهم میسازد سازد و الشمس اذا طلعت تزاور عنك فيم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم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 خورشید را می دیدی که به هنگام طلوع به سمت راست قارشان متمایل می و به هنگام قروب به سمت چپ و آنها در محل وسیعی از آن قار قرار داشتند این از آیات خداست هر کس را خدا هدایت کند هدایت یافته واقعی اوست و هر کس را گمراه نماید هرگز. ولی راهنمایی برای او نخواهی یافت و تحسبهم وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعه بالوصيد لو اطلعت علیهم لولیت منهم فرارا ولملکت منهم رعبا و اگر به آنها نگاه میکردی میپنداشتی بیدارند پنداشتی بی در حالی که در خواب فرو رفته بودند و ما آنها را به سمت راست و چپ می تا بدنشان سالم بماند و سگ آنها دستهای خود را بر دهانه قار گشوده بود و نگهبانی می کرد. اگر نگاهشان می کردی، از آنان می گریختی و سرتا پای تو از ترس و وحشت پر میشد. شد و کذالک بعثناهم لیتساءلو بینهم قال قائل منهم کم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فالينظر فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَالْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَالْيَتَلَطَّفُ وَالْيَتَلَطَّفُ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدٌ إِنْقُونَ آنها را از خواب برانگیختیم تا از یک دیگر سوال کنند. یکی از آنها گفت: چه مدت خوابیدید؟ گفتند یک روز یا بخشی از یک روز و چون نتوانستند مدت خوابشان را دقیقا بدانند گفتند پروردگارتان از مدت خوابتان آگاه تر است اکنون یک نفر از خودتان را با این سکه ای که دارید به شهر بفرستید تا بنگرد کدام یک از آنها غذای پاکیزتری دارند و مقداری از آن برای روزی شما بیاورد اما باید دقت کند و هیچ کس را از وضع شما آگاه نسازد این هم یا یظهرو علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتهم ولن تفلحو ولن اذن ابدا چرا که اگر آنان از وضع شما آگاه شوند سنگسارتان میکنند می کنند. یا شما را به آین خیش باز میگردانند و در آن صورت هرگز روی رستگاری را نخواهید دید و کذالک اعثرنا علیهم لیعلمو ان وعد الله حق و ان لا ریب فیها وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيان ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا وإنچنين مردم را متوجه حال آنها کردیم. تا بدانند که وعده خداوند در مورد رستاخیز حق است و در پایان جهان و قیام قیامت شکی نیست در آن هنگام که میان خود درباره کارخیش نزاع داشتند گروهی می گفتند بنایی بر آنان بسازید تا برای همیشه از نظر پنهان شوند و از آنها سخن نگویید که پروردگارشان از وضع آنها آگاه تر است ولی آنها که از رازشان آگاهی یافتند و آن را دلیلی بر رستاخیز دیدند گفتند ما مسجدی در کنار متفن آنها میسازیم تا خاطری آنان فراموش نشود سیقولون رابعهم کلبهم ويقولون خمسة سادس كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قُرْرَبِي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إلَّا قَلِيلٌ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 سخنانی بی دلیل است و گروهی می گویند آنها هفت نفر بودند و هشتمین آنها سگشان بود بگو پربردگار من از تعدادشان آگاهتر است جز گروه کمی تعداد آنها را نمی دانند. پس درباره آنان جز با دلیل سخن مگو و از هیچ کس درباره آنها سؤال مکند ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا و هرگز در مورد کاری نگو من فردا آن را انجام می‌دهم الا إلا ان يشاء الله وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وقل عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رشدا. مگر اینکه خدا بخواهد و هرگاه فراموش کردی جبران کن و پروردگارت را به خاطر بیاور و بگو امیدوارم که پروردگارم مرا به راهی روشنتر از این هدایت کند ولبثوا في فی کهفهم ثلاثمئت سنین و آنها در قارشان 300 سال درنگ کردند و نه سال نیز بر آن افزودند قل الله اعلم بما لبثو له غیب السماوات والأرض ابصر به و اسمع مَا لهم من من ولي ولا في حكمه احدا. بگو خداوند از مدت توقفشان آگاه تر است غیب آسمانها و زمین از ازان اوست راستی چه بینا و شنواست. آنها هیچ ولی و سرپرستی جز او ندارند و او هیچ کس را در حکم خود شرکت نمیدهد و لما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونه ملتحدا ان کتاب پروردگارت به تو وحی شده تلاوت کن هیچ چیز سخنان او را دگرگون نمی و هرگز پناهگاهی جز او نمی یابید وصبر نفس که معالذین یدعون ربهم بالغدات والعشی یریدون وجهه ولا تعدعینا که عنهم ترید زينة الحياة الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه واتبع هواه وكان امره فرطا. با کسانی باش که پروردگار خود را صبح و عصر میخوانند و تنها رضای او را میطلبند و هرگز به خاطر زیورهای دنیا چشمان خود را از آنها برمگیر و از کسانی که قلبشان را از یاد خود قافل ساختیم اطاعت مکن همانها که از هوای نفس پیروی کردند و کارهایشان افراتی است و قول الحق من ربکم فمن شاء فالیؤمن ومن شاء فالیکفر اننا اعددنا للظالمين ناراً احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بما ان كالمهل ليشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا بگو این حق است از سوی پروردگارتان هر کس می خواهد ایمان بیاورد و هر کس می‌خواهد کافر گردد ما برای ستمگران آتشی آماده کرده ایم که سراپرده اش آنان را از هر سو احاطه کرده است و اگر تقاضای آب کنند آبی برای آنان میآورند که همچون فلز گداخته صورتها را بریان میکند. چه بدنوشیدنی و چه بد محل اجتماعی است این الذين الصالحات ان لا, لا نضيع من احسن کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند ما پاداش نیکوکاران را زایع نخواهیم کرد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 مدک این نفیها الراای نعم الثواب و حسنت آنها کسانی هستند که بهشت جوابدان برای آنان است، باغهایی از بهشت که نهرها از زیر درختان و قصرهایش جاری است. در آنجا با دستبندهایی از طلا، آراسته میشوند و لباسهایی فاخر به رنگ سبز از حریر نازک و زخیم دربر می کنند در حالی که بر تختها تکیه کرده اند چه پاداش خوبی و چه جمع نیکویی و اضرب لهم مثل الرجلین جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب و حففناهما و حففناهما بنخل و جعلنا بینهما بر برای آنان مثالی بزن آن دو مرد که برای یکی از آنها دو باغ از انواع انگورها قرار دادیم و گرداگرد آن دو باغ را با درختان نخل پوشاندیم و در میانشان زراعت پربرکتی قرار دادیم. آتت ولم تظلم منه شیئا هر دو باغ میوه آورده بود میده های فراوان و چیزی فروگذار نکرده بود و میان آن دو نهرب بزرگی جاری صحبتیم. بودیم كان له ثمر فقىل لصاحبه وهو يحاوره فقىل لصاحبه وهو يحاوره أنا اكثر من كماله و أعذن فرا صحبت این باغ درآمد فراوانی داشت. همین جهت به دوستش در حالی که با او گفت و چنین کرد چون این گفت من از نظر ثروت از تو برتر و از نظر نفرات نیرومند ترم و دخل جنته و هو ظالم لنفسه قال قال ما اظن انت بید ابدا و در حالی که نسبت به خود ستمکار بود در باغ خیش گام نهاد و گفت من گمان نمیکنم هرگز این باغ نابود شود و ما اظن الساعه قائمه ولا اعدت الى ربي لا اجدا منها انقلبا و باور نمیکنم قیامت برپا گردد و اگر به سوی پروردگارم بازگردانده شوم و قیامتی در کار باشد جایگاهی بهتر از اینجا خواهم یافت قال له صاحبه وهو یحاوره اكفرت بالذی خلقك من تراب خلقك من تراب ثم من ثم دوست با ایمان وی در حالی که با او گفتگو می کرد گفت آیا به خدایی که تو را از خاک و سپس از نطفه آفرید و پس از آن تو را مرد کاملی قرار داد کافر شدی لكن ولا اشرك بربي احدا. ولی من کسی هستم که الله پروردگار من است و هیچ کس را شریک پروردگارم قرار نمی دهم ولولا اید دخلت جنتک قلت ما شاء الله لا قوت الا بالله این ترنی على اقل و ولدا. که وارد باغت شدی نگفتی این است که خدا خواسته است قوت و نیرویی جز از ناهیه خدا نیست و اگر میبینی من از نظر مال و فرزند از تو کمترم مطلب مهمی نیست فعسى ربي من, عليها عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا شاید پروردگارم بهتر از باغ تو به من بدهد و مجازات حساب شده ای از آسمان بر باغ تو فرو فرستد به گونه ای که آن را به زمین بیگیاه گیاه لغزنده ای مبدل کند و یصمیح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا و یا آب آن در اعماق زمین فرو رود آن گونه که هرگز نتوانی آن را بدست آوری وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما فق فيها على ما فق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول, ويقول يا ليتني لم أشرك بربّي أحدا حال عذاب إلهي فرارسيد و تمام میوه‌های آن نابود شد و او به خاطر هزینه‌هایی که در آن صرف کرده بود پیوسته های خود را به هم میمالید در حالی که تمام باغ بر داربست‌هایش فرو ریخته بود و می‌گفت ای کاش کسی را همتای پروردگارم قرار نداده بودم ولم تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا و گروهی نداشت که او را در برابر عذاب خداوند یاری دهند و از خودش نیز توانست یاری گیرد هنالك الولایه لله الحق و خیر و خیر عقبا. در آنجا ثابت شد که ولایت و قدرت از آن خداوند برحق است اوست که برترین ثواب و بهترین عاقبت را برای مطیعان دارد وَاضْضِرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلَّاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فأصبح هشيما, فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَزْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا اي زندگی دنیا را برای آنان به آبی تشبیه کن که از آسمان فرو میفرستیم و به وسیله آن گیاهان زمین سرسبز می شود و در هم فرو می رود اما بعد از مدتی می و بادها آن را به هر سو پراکنده میکند. و خداوند بر همه چیز تواناست المال و البنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا خیر عند ربک ثوابا و خیر املا مال و فرزند زینت زندگی دنیاست و باقیات صالحات ثوابش نزد پروردگارت بهتر و امید بخشتر است. و یوما نسیر الجبال و تر الأرض بارزت و حشرناهم و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا و روزی را به خاطر بیاور که کوه‌ها را به حرکت درآوریم و زمین را آشکار و مثبت حمیتی و همه آنان را بر و احدی از ایشان را فرو نخواهیم کرد وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اولا مره بل زعمتم ان لم نجعل لكم موعدا آنها همه در یک صف به پیشگاه پروردگارت عرضه می شوند و به آنان گفته می شوند همگی نزد ما آمدید همان گونه که نخستین بار شما را آفریدیم اما شما گمان می کردید ما هرگز موعدی برایتان قرار نخواهیم داد و وضع الكتاب و وضع الكتاب فتر المجرمین مشفقین من فيه فیه وقولون.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 ولا يظلم ربك احدا و کتاب کتابی که نامه اعمال همه انسان هاست در آنجا گذارده می شود پس گناهکاران را میبینی که از آنچه در آن چه است ترسان و هراسانند و میگویند ای وای برما این چه کتابی است که هیچ عمل کوچک و بزرگی را فرو نگذاشته مگر اینکه آن را به شمار آورده است و این در حالی است که همه اعمال خود را حاضر می‌بینند و پروردگارت به هیچ کس ستم نمی‌کند. و اید قلنا اللّلّ الملائكة صلّووا لأدم فسجدوا إلا ابلیس إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربیه افتت تخیذونه و ذریته اولیاء من دونی و هم لکم عدو بی ازلی الظالمین بدلا بیا دارید زمانی را که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید آنها همگی سجده کردند جز ابلیس که از جن بود و از فرمان پروردگارش بیرون شد آیا با این حال او و فرزندانش را به جای من اولیای خود انتخاب می کنید؟ در حالی که آنها دشمن شما هستند؟ چه جایگزین بدی است برای ستمکاران؟ ما اشهدت خلق السماوات والارض ولا خلق انفوسیم؟ و خلق و من هرگز آنها را به هنگام آفرینش آسمانها و زمین و نه به هنگام آفرینش خودشان حاضر نساختم و من هیچگاه گمراه کنندگان را دستیار خود قرار نمی دهم و یوم یقولنا دو شرکائی الذین زعمتم فدعوهم فلم یستجیبو لهم فلم یستجیبو لهم و جعلنا بینهم موبقا به بیاورید روزی را که خداوند میگوید همتایانی را که برای من می پنداش دید بخانید تا به کمک شما بشتابند ولی هرچه آنها را میخانند جوابشان نمیدهند و در میان این دو گروه کانون حلاکتی قرار داده این. و گنهکاران آتش دوزخ را میبینند و یقین می میکنند که با آن درمی آمیزند و هیچ گونه راه گریزی از آن نخواهند یا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا و در این قرآن از هر گونه مثلی برای مردم بیان کرده ایم ولی انسان بیش از هر چیز به مجادله میپردازد و ما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى و يستغفروا ربهم إلا الا تأتیهم تأتيهم سندت الاولین او يأتيهم العذاب قبلا و چیزی مردم را باز نداشت از اینکه وقتی هدایت به سراغشان آمد ایمان بیاورند و از پروردگارشان طلب آمرزش کنند جز اینکه که خیر سری کردند گویی میخواستند سرنوشت پیشینیان برای آنان بیاید یا عذاب الهی در برابرشان قرار گیرد و ما و یجادلو الذین کفرو بالباطل لیدحضو به الحق و اتخذو آیاتی و اتخذو آیاتی و ما انذرو هزوه ما پیام بران را جز به بشارت دهنده و انذار کننده نمیفرستیم. اما کافران هموار مجادله به باطل می کنند تا به گمان خود حق را به وسیله آن از میان بردارند و آیات ما و مجازات هایی را که به آنان بعد داده شده است به باد مسخره گرفتند و من اظلم من, من ذکر ربه فأعرض عنها و نسی ما قدمت ان جعلنا على قلوبهم اكنده ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وان تدعوهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا چه كسي ستم كار است از آن کس که آیات پروردگارش به او تذکر داده شد و از آن روی گرداند و آنچه را با دستهای خود پیش فرستاد فراموش کرد ما بر دلهای اینها پرده های افکنده این تا نفهمند و در گوشهایشان سنگینی قرار داده این تا صدای حق را نشنوند و از این رو اگر آنها را به سوی هدایت بخانی هرگز هدایت نمی شوند. وربكم الغفور ذو الرحمه لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا آمور آمرزنده و صاحب رحمت است اگر میخواست آنان را به خاطر اعمالشان مجازات کند عذاب را هر چه زودتر برای آنها میفرستاد ولی برای آنان موعدی است که هرگز از آن راه فراری نخواهند داشت وذلکل القرآن اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا این شهرها و آبادی است که ما آنها را هنگامی که ستم کردند حلاک نمودیم و برای حلاکتشان موعدی قرار دادیم و قال موسی لفتاه لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او حقبا به خاطر بیاور، هنگامی را که موسی به دوست خود گفت دست از جستجو بر نمی دارم تا به محل طلاقی دو دریا برسم هرچند مدت طولانی به راه خود ادامه دهم فلما مجمع ما ما سبيله في البحر سربا. ولی هنگامی که به محل طلاقی آن دو دریا رسیدند ماهی خود را که برای تغذیه همراه داشتند فراموش کردند و ماهی راه خود را در دریا پیش گرفت و روان شد فلما جاوز قال لفتاهاتنا غدا انا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب که از آنجا گذشتند موسی به یار همسفرش گفت غذای ما را بیاور که سخت از این سفر خسته شده‌ایم قال أ الرأيد إذ أون إلى الصخرة فإني فإِن ننسيد الحودَ وَماأَسانه إلا الشطان أن أذكور والاتخذَ سبيله في البحر عجبا گفت بخاطر داری هنگامی که ما برای استراحت به کنار آن صخر پناه بردیم. من در آنجا فراموش کردم جریان ماهی را بازگو کنم و فقط شیطان بود که آن را از خاطر من برد و ماهی به طرز شگفت‌آوری راه خود را در دریا پیش گرفت موسی گفت آن همان بود که ما میخواستیم پس از همان راه بازگشتند در حالی که پیجویی می‌کردند سووجد عبدا من عبادنا اتایناهو رحمتا من عندنا وعلمناه وعلمناهم من لدنا علما در آنجا بنده ای از بندگان ما را یافتند که رحمت و موهبت عظیمی از سوی خود به او داده و علم فراوانی از نزد خود به او آموخته بودیم موسی به او گفت آیا از تو پیروی کنم تا از آنچه به تو تعلیم داده شده و مایه رشد و صلاح هست به من بیاموزی قال انك لن تستطيع معي صبرا گفت تو هرگز نمیتوانی با من شکیبایی کنی و کیف تصبر على ما لم تحق به خبرا می میتوانی در برابر چیزی که از رموزش آگاه نیستی شکی با باشی قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا موسی گفت به خاست خدا مرا شکیبا خواهی یافت و در هیچ کاری مخالفت فرمان تو نخواهم کرد قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى حتی احدث لك منه ذكرا خیزر گفت پس اگر میخواهی به دنبال من بیایی از هیچ چیز مپرس تا خودم به موقع آن را برای تو بازگو کنم فانطلقا حتی اذا رکبا في السفینة خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت امرا دو براه افتادند تا آنکه سوار کشتی شدند خضر کشتی را سوراخ کرد موسی گفت آیا آن را سوراخ کردی که اهلش را غرق کنی راستی چه کار بدی انجام دادی قال الا لم اقول انك لن تستطيع معي صبرا قلت نگفتم تو هرگز نمیتوانی با من شکیبایی کنی قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا موسی گفت مرا به خاطر این فراموشکاری ام مؤاخذه مکن و از این کارم بر من سخت مگیر. طلقا حتی اذا لقي يا فقتله قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا باز به راه خود ادامه دادند تا اینکه نوجوانی را دیدند و او آن نوجوان را کشت موسا گفت آیا انسان پاکی را بی آنکه قتلی کرده باشد کشتی به راستی کار زشتی انجام دادی قال الم اقول لك, لك لن تستطيع صبرا. باز آن مرد عالم گفت آیا به تو نگفتم که تو هرگز نمی توانی با من صبر کنی؟ قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد من لدنني عذرا موسی گفت بعد از این اگر درباره چیزی از تو سوال کردم دیگر با من همراهی نکن زیرا از سوی من معذور خواهی بود فانطلقوا حتى إذا أتيا أهل قريت استطعم أهلها اهلها فابوا فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فأقامه باز شئت اجرا باز به راه خود ادامه دادند تا به مردم قریه ای رسیدند از آنان خواستند که به ایشان قضا دهند ولی آنان از مهمان کردنشان خودداری نمودند با این حال در آنجا دیواری یافتند که می‌خواست فروریزد، و آن مرد عالم آن را برپا داشت موسا گفت لا اقل میخواستی در مقابل این کار مزدی بگیری قال هذا فراق بینی و بینی کسا ما لم تستطع علیه صبرا او گفت اینک زمان جدائی من و تو فرا رسیده اما به زودی راز آنچرا که نتوانستی در برابر آن صبر کنی به تو خبر میدهم. ان السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت أن اعيبها فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا اما آن كشتي مال گروهی از مستمندان بود که با آن در دریا کار میکردند و من خواستم آن را معیوب کنم چرا كه پشت سرشان پادشاهی ستمگر بود كه هر چشته سال را راب بزرگ نیکرید. و اما الغلام فکان ابوهم منئين فخشینا فخشینا اين يورهقهما طويانه و آن نوجوان پدر و مادرش با ایمان بودند و بیم داشتیم که آنان را به تقیان و کفر بادارد فَأَرَدْنَا اَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خيرا مِنْهُ وَأَقْرَبَ رُحْمَةً از این رو خواستیم که پروردگارشان به جای او فرزندی پاکتر و با محبتتر به آن دو بدهند وَأَنبَلَ جِدَارٌ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ما لم و اما آن دیوار از آن دو نوجوان یتیم در آن شهر بود و زیر آن گنجی متعلق به آن دو وجود داشت و پدرشان مرد صالحی بود و پروردگار تو میخواست آنها به حد بلوغ برسند و گنجشان را استخراج کنند این رحمتی از پروردگارت بود و من آن کارها را خودسرانه انجام ندادم این بود راز کارهایی که نتوانستی در برابر آنها شکیبایی بخرجهی ویسالونک عن ذی القرنین قل منه ذكرا. و از تو درباره قرنین میپرسند بگو به زودی بخشی از سرگذشت او را برای شما بازگو خواهم کرد انا مکننا له الارض من كل سببا. ما به او در روی زمین قدرت و حکومت دادیم و اسباب هر چیز را در اختیارش گذاشتیم فأتبع سببا. او از این اسباب حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أنت عذب وإما وإما أن تتخذ فيهم حسنا تا به غروبگاه آفتاب رسید در آنجا احساس کرد و در نظرش مجسم شد که خورشید در چشمه تیره و گلالودی فرو می‌رود و در آنجا قومی را یافت گفتیم ای ذوالقرنین یا آنان را مجازات می‌کنی و یا روش نیکویی در مورد آنها انتخاب می‌نمایی قال ا ما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا گفت اما کسی را که ستم کرده است مجازات خواهیم کرده سپس به سوی پروردگارش باز میگردد و خدا او را مجازات شدیدی خواهد کرد و اما من آمّان و عمل صالح فله جزاء نِالحُسْمَ و سنقول له من أمرنا يسراء. و اما کسی که ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد پاداشی نیکوتر خواهد داشت و ما دستور آسانی به او خواهیم داد. ثُمَّ بار دیگر از اسبابی که در اختیار داشت بهره گرفت حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لم نجعل لهم من دونها سترا تا به خواستگاه خورشید رسید در آنجا دید خورشید بر جمعیتی طلوع می کند که در برابر تابش آفتاب پوششی برای آنها قرار نداده بودیم و هیچ گونه سایبانی نداشتند و قد احطنا بما لديه آری این چونین بود کار زلقرنین و ما به خوبی از امکاناتی که نزد او بود آگاه بودیم ثم أتبع باز از اسباب مهمی که در اختیار داشت استفاده کرد حتی اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون لا يكادون يفقهون قولا و هم به راه خود ادامه داد تا به میان دو کوه رسید و در کنار آن دو کوه قومی را یافت که هیچ سخنی را نمیفهمیدند و زبانشان مخصوص خودشان بود قالوا يا ذالقرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرج فهل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا ان گروه به او گفتند ای زلقرنین، یعجوج و معجوج در این سرزمین فساد میکنند آیا ممکن است ما هزینه ای برای تو قرار دهیم که میان ما و آنها صدی ایجاد کنی؟ قال ما مکنی فیه ربی خیر فاعینونی بقوة اجعل بينكم و ردما زلقرنین گفت آنچه پروردگارم در اختیار من گذارده بهتر است از آنچه شما پیشنهاد میکنید مرا با نیرویی یاری دهید تا میان شما و آنها سد محکمی قرار دهم تونی زبر الحدید حتی اذا ساوی بین الصدفین قال انفخو حتی اذا جعله نارا قال آتونی, قال آتونی عليه قطرا قطعات بزرگ آهن برایم بیاورید و آنها را روی هم بچینید تا وقتی که کاملا میان دکوه را پوشانید گفت در اطراف آن آتش بیفروزید و در آن بدمید آنها دمیدند تا قطعات آهن را سرخ و گداخته کرد گفت اکنون مثل مذاب برایم بیاورید تا بر روی آن بریزم فراستطع ان یظهر و مستطاعون له چنان سد نیرومندی ساخت که آنها طایفه یعجوج و ماجوج قادر نبودند از آن بالا روند و نمیتوانستند نقبی در آن ایجاد کنند قال هذا رحمه من ربي فيدا جاء وعد ربي جعله وكان وعد ربی حقا. آنگاه گفت این از رحمت پروردگار من است اما هنگامی که وعده پروردگارم فرارسد آن را در هم میکوبد و وعده پروردگارم حق است و ترکنا بعضهم يوما و فجمعناهم و در آن روز که جهان پایان میگیرد ما آنان را چنان رها میکنیم که در هم موج میزنند و در سور دمیده میشود و ما همه را جمع می‌کنیم و عرضنا جهنم يومئذ للكافرین عرضا در آن روز جهنم را بر کافران عرضه می‌داریم الذين كانت اعینهم في غطاء عن ذکری وکانو لا یستطيعون سماعا همان ها که پرده ای چشمانشان را از یاد من پوشانده بود و قدرت شنوایی نداشتند اف حسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادا من دوني اولياء اننا اعددنا جهنم للكافرين نزلا آیا کافران میتوانند بندگانم را به جای من اولیای خود انتخاب کنند ما جهنم را برای پذیرایی کافران آماده کرده ایم قل بگو آیا به شما خبر دهیم که زیانکار ترین مردم در کارها چه کسانی هستند؟ الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون ان لهم يحسنون صنعا آنها که تلاش هایشان در زندگی دنیا گم و نابود شده با این حال میپندارند پندارند کار نیک انجام میدهند اولئیک الذین كفروا بی آیات ربهم و لقائه فحبطت اعمالهم, فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا آنها کسانی هستند که به آیات پروردگارشان و لقای او کافر شدند به همین جهت اعمالشان حبت و نابود شد از این رو روز قیامت میزانی برای آنها برپا نخواهیم کرد ذالک جزاؤم جهنم بی ما کفر و اتخذو و اتخذو آیاتی و رسولی هزوه آری این گونه است دو دوزخ است به خاطر آن کافر شدند و آیات من و پیام برانم را به سخریه گرفتند. و الصالحات لهم الفردوس نزلا. اما کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، باغهای بهشت برین محل پذیرایی آنان خواهد بود. خالدین فیها لا یبغون عنها حولا آنها جاودان در آن خواهند ماند و هرگز تقاضای نقل مکان از آنجا نمی کنند. قل لو کان البحر مدادا لكلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد قبل ولو جئنا بمثله مددا. بگو اگر دریاها برای نوشتن کلمات پروردگارم مرکب شود دریاها پایان میگیرد پیش از آن که کلمات پروردگارم پایان یابد هرچند همانند آن دریاها را کمک آن قرار دهیم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 ولا يشرك ربه احدا. بگو من فقط بشری هستم مثل شما امتیازم این است که به من وحی می شود که تنها معبودتان معبود یگانه است پس هر که به لغای پروردگارش امید دارد باید کاری شایسته انجام دهد و هیچ کس را در عبادت پروردگارش شریک نکند